بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل هٰه وصحبه أجمعين أما بعد ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن الدرويتي ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن وداروتي ديار ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ها ستصحية ولك الحمد أنت ملک السماوات مالک آسمان ها و زمینی بار الله ها حمد و ستایشت مالک هر آنچه میان آسمان و زمینه مالک آسمان ها مالک زمین الله جلشن و چون خالق آنهاست آفریننده اونهاست قیوم همور و شعون تمامی مخلوقات را تدبیر میکنه به خاطر همین مستحق ستایش و حمد و مالک اونهاست چون مالک آنهاست آفریننده اونهاست رب ولک الحمد و انت رب السماوات چون پروردگار اونهاست چون آفریننده ی اونهاست باید او را ستایش بگیم و او مستحق ستایشه که این مننه رو بر ما گذاشت ما را آفرید نه اینکه بگیم چرا ما را آفرید نه باید سپاسگزار الله باشیم که این فرصت را به ما داد و ما را آفرید که از عظمت الله ببینیم از نشانه هاش از آیاتش از نورش ببینیم این مننت را بر سر ما گذاشت الله مستحق ستایشه الله در این ملکش هیچ شریکی نداره هیچ معینی و یاری و یاوری نداره روزی ها به دست الله بحث شهدا رو کردیم شهدا گفتیم الله اللهن بعضی ها چون الله گفته از شهدا که زندن بل احیا روزی رو از اون شهید میطلبن اون رو واسطه قرار میدن بین خودشون الله یا مستقیما ازش میخوان حالا مشرکین انواع متفاوتن درجات دارن برای خودشون یا درکات دارم بله صحبه خام بگیم عرابی وقتی که میشنوه یک کسی بانوان یک ولی شهیدی را صدا میزنه بعد دلیلش رو میخواد میگه چون الله گفته که اینا زنده هن. بعد بهش میگه خب چرا دنبالش را نمیخونی اولا گفته شده یک از من اما در صحنه تواف بوده این حرف سخن رو سخن را میشنوه بعد میگه که خب ای کاش دنباله آیه را میخوندی بل احیاء ربهم را بهم یرزق اونها از الله هم زندن الله روزیشون میکنه نهی که اونها روزیتون میکنن اونها خودشون شهده محتاج الله هم که روزیشون بکنه از نعیم و خوشی برزخش و بهشش به اونها روزی بده خودشون محتاجن کسی که خودش نیازمنده چطور دست نیاز بهش بلند میکنی الله که فقط تنها بی الله که مرگ و زندگی من و شما به دست اوست اللهی که ورق میزنه بر فردی که به دنیا بیاد و ورق میزنه بر فردی که از دنیا بره ورق میزنه بر شخصی عزیز بشه و شخصی دیگر ذلیل بشه ورق میزنه فردی مریض بشه فردی شفا بیابه ورق میزنه الله جل شنه خلق خودشه کسی هم نمیتونه الله رو زیر ببره کسی در غم و اندوه بیفته و کسی دیگر شاد و خشنود باشه تمامی امور هر چیزی که در آفرینش الهی رخ میده در ملکوت الهی رخ میده تقدیرش به دست الله هزار سال قبل از اینکه این مخلوقات به وجود بیان الله قلم را خلقت میکنه و میگه بنویس اون چیزهایی که قرار بشه تمامی امور رو از قبل الله دونسته عالم بوده بهش و به قلم هم دستور میده که بنویسه تمامی امور نوشته شده نوشته شده من کی به دنیا بیام کی و کجا از دنیا برم قلنا یصيبنا الا ما كتب الله لنا اون چیزی که الله نوشته فقط به ما میرسه جند انسش جمع بشن الان که ما را نابود بکنن نمیتونن الا اینکه الله بخواهد به دست الله چون مالکشونه مالک تمامی مخلوقات ابراهیم رو خاصن بسوزونن نتونستن رسول الله را الله چند بار خواستن او را ترور کنن نتونستن از وسط اونها رد میشه از مکه بیرون میاد نمیبینن بالای غار میسان نمیبینن الله نخواسته که او را ببینن چون الله واسه که نجات ب الله وقتی بخواد تو را نجات بده کسی نمیتونه جلو الله را بگیره چون الله مالک تمامی مخلوقاته معنای ملک را یافتن خیلی مهمه مثل معنای قیومیت اینکه خودت را مملوک الهی ببینی مملوکی یعنی بنده عاجزی یعنی بنده محتاجی بنده فقیر چون الله مالکه از مالک انسان باید به طلبه نه از اون کسی که خودش مملوکه چه بود باشه چه مرده باشه هر کسی که مملوکه تو حق نداری که دست نیاز به طرف اون بلند بکنی از مالک اون بط از مالک اون مرده و از مالک اون خدایی که پرستیده میشه خدایان باطل که الله مالک تمامی اونهاست از اون مالک تمامی اونها باید خاصه بشه آیاتی که در قرآن تکرار میشه یادآور میشه الله به ما زیادن مثل فرمودی الله قولت علدین الذين عمتون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير قل ادعو الذين زعمتم من دون الله مخايت؟ كسي جلوة هناك غرفته؟ بخايت كسيك انكسيك الدعي خدا إذا رشتريت انكسيك مالك يكزره مثقاليهم نيست أسئين أفرينش قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لا يملكون مالک یک ذره نیست کسی که مالک نیست الله چی میخواد بگه مستحق دعا نیست قوله دعو برید ازش بخواید وقتی که الله میگه ازش بخواید از چه بابی داره بهمون میگه از باب توفیق سرزنیش نکوهش نه از باب مدح ستایش به چه حقی اون کسی که مالک نیست ازش میطلبی اون کسی که چیزی به دستش نیست ازش میطلبی مگر روزی به دست اون مرده هست، به دست اون بوت به دست اون خدایی که او رو داره صدا میزنی میگه روزی دست اونه مگه او توس اون مالک توست، اون تو آفریده، پروردگار تو اونه مگه چون نیست، پس نباید او را صدا بزنی نباید ازش بتلبی، دعاش بکنی، صداش بزنی اون کسی که نه شریک الهی بوده در ملک آفرینشش و نه هم یاور الهی بوده و یارش بوده در این خلقت آفرینش لا یم مثقال اثقال فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من, من ظهیر کسی هم نبوده که الله را یاری بده در این آفرینش و در این هستی جای که را الله در قرآن میفرماید در سری فاطر یو لج ال لیل فِال نهار و یو لج النهار فِال لیل و سخّر الشمس والقمر كل يجري دَأجنا المسمّى ذهلكم الله الله هست شب را در روز آمیخته میکنه و روز را در شب خورشید را برای شما گذاشته و ما همه شنا می کنند در اون فضا این الله آفریدگار شما که باید او را بپرسید آفریننده است مالک آسمان ها و زمینه و الیکم الله ربکم له الملك این ملک مال الله خورشید مال الله کسی که خورشید را آفریده بود صدا زده بشه نه اون کسی که مملوک و لدین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر یک پرده ای که بر روی هسته خرمایی که هم هست قطمیر مالک اونم نیستن مالک یک خرما و یک حسه خورما اون اون ای که بر حسه خورما هست مالک اونم نیستن اینه هیچی ندارن از خودشون الله که داده و آفریده این تدعوهم لا يسمعو دعایکم صداشون بزنی نمیشنون ولو سمعو غلا بشنون حالا هم شنیند ما استجابو لکم استجابت نمیکنن چون مالکش نیستن و یوم القیامت یک فرونه به شرکیکم ولا ينبعو کم مثل خبیر روز قیامت امینات گواه میشن بر علیه شما برحاله این شرکتون یا ایها الناس و انتم الفقراء الاله الله والله هو الغني الحمید آیات 13 و 15 سوره فاطر شما فقیر و محتاج الهی هستید فقط و بس محتاج به درگاهش هستید و بس کسی جز او را صدا نزنید فقر و نیازمندی خودتون را به درگاه و پیش کسی نبرید تو محتاج مردی نیستی که زیر خاک خابیده محتاج اللهی که الله خالقه مورده است او را صدا بزار و اتخذوا من دونه آلهتا لا يخلقون شيئا خدایان را قرار دادن که نمی آفرینن کسی که آفرینند نیست مستحق نیست تو صدایش بزنی دعایش بکنی و اتخذوا من دونه آلهتا لا يخلقون شيئا و هم يخلقون و لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا بلک انها آفرده شدن بل بلک انها مملوکن اونها مالک امور خودشان هم نیستن نفع زیان خودشون هم به دست خودشون نیست این مسئله بازم سر میشه ولا لا يملكون موتا ولا و ولا نشورا نمرگی نزندگی نکسی را به دنیا میابرن و نکسی را از دنیا میبرن مرگ به دست الله زندگی به دست الله روزی به دست الله الله که مالک ماست له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشی له دعوت الحق فقط دعاء زدن الله به حق غیر از این حق له دعوت الحق والذين يدعون من دونه صدا سدازاده میشن غیر از الله لا يستجيبون لهم بشی هیچ وقت سجابت نمیکنن چون مالک نیستن چون خالق نیستن چون آفریننده نیستن چون مالک نیستن لا يستجيبون لهم بشی الا كباصط كفيه الى الماء ليبلغ فم کسی که میگه به آب بیا آب تو رو خدا بیا تو بیا دستشو درست کرده به سوی بسو... آب ای آب بیا تو دهنم آب میاد، آب میاد به ترافته، الا کباستی کفیه، الا الماء لیاب لغفا. تو اینکه آب دست دست نیازش رو با آب بلند کرد، ای آب میاد تو دهنم آب مملوکه، آب بس خودش اراده اینا نداره چطور میاد تو دهانتو؟ چطور سدای تو را بشنابران آب؟ چطور میاد تو دهانتو؟ الله مال کش، و ما هو ببالغه، و ما دعا الکافرینه الا في ضلا. خاص سناز مورد، خاص سناز بود، خاص از هر معبدی را الله جوز خودش اسمش جوزش کفر. وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن جز غمراهي چيزي ديگار نيس هر كسي الله له دعوة الحق دعاء الله فقد حق غير الله هر كسي صدازات هر كسي غير الآله رصدازات دعاش برباطلة وغمراهية و چيه كفر وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن غمراهي چيه اس كفر اس الله كالله نمي بخشي ونمي يومرزي ولما فقد نكوني دين إن شانت آيه كي قفتم هماشم بحث ملق درشن هست ولا يملكون لأنفسهم ضرر ولا نفع إن آيه مثلا در سوري رعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتهم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بازن بحث ملك إن آيات پنشت آيه كي قلن هماشم بحث ملق درش هست قل من رب السماوات کی هست كي پر بردگار آسهمون وزمينه قل الله بقو الله ونها مقرار دارن دي دار لا ديگار الله میگن الله که آفریدگاره رسک و روزی رسانه قل افت خط من دنیا و پس چرا واسطه و ولی قرار دادید بین خودتون الله اون آیات شاید یک شخصی بیاد بگه خب نه مقصد تلبیدن و خواستن از خود مرد مستقیم این مستقیم تو بیا به داد ما برست ولی اینجا رو چی میگی اگر اونجا مستقیم بود اینجا غیر مستقیمه اینجا داره الله میگه بین من و خودت واسطه قرار دادی یه قرار دادی اولیا قرار دادی قل من رب السماوات والارق قل اللہ قل افتخذ من دونیه اولیاء چرا پس ولی واسطه قرار دادی بین من و خودت لا یم لانفسهم لانفوسهم نفعا اون کسی که نفع و زرار و خودش خودش سود زیان خودش به دست خودش نیست الله که بهش نفع و سود میرسونه یا زیان از سوی الله روزی را الله تعییم میکنه ها را الله برق میزنه اون ولی خودش مملوکه از خودش اختیاری نداره مردش به دست اللهه زندگیش به دست الله بوده کی به دنیا بیاد و کی بمیره اون کسی که خودش محتاجه چرا در اون محتاج را میزنی؟ بس اونجا عتاب و سرزنش اون کسی که مستقیما بیاد از مرده بخواه اینجا هم هرچنکه کسیام غیر مستقیما بخواد واسطه قرار بده شامل میشه اینجا عتاب و سرزنش مستقیم برسر اون کسایی که بین خودشون الله واسطه قرار میدن مثل قوم نوح که دوچار اون شرک شدن یغوث و یعوق و نصرو اون پنج از علمای صالحشون که اومدن بین خودشون الله واسطه قرار دادن میگفتن اینا شفاعتگر مناص الله هستن. اینو واسطه قرار میدادن نه اینکه اعتقاد داشته باشن که اونها خدای نه میگفتن اون آدمای ناپاکین اونها پاک بودن دعای اونها استجابت میشه اونا مستجاب و دعوه بودن ما از اونها میخوام که اونها شفیع ما باشن اونها از الله بخوام برای ما یعنی خودشون نمیومدن که فقر و نیاز خودشون به الله بگن. میو مدن از مردی میخواستن که تو از الله بخوای تو مستجاب و دعوه هستی اشخاص صالحی بودن ابن عباس رضی الله عنه میگه چنانچه در صحیح بخاری افراد صالحی بودن که اینگونه پرسیده شدن چگونه پرسیده شدن با اون دعا و صدا زدن و واسط قرار دادن بین خودشون و بین الله از الله و مستقیم دعا کردنش غافل شدن و اومدن دست نیاز را به اون مخلوق به اون مملوک دراز کردن قل هل یسوی الاعمى اون کسی که کور با اون کسی که بیناست و میبینه با هم یکیان این مشرکه که نمیبینه این مشرکه که نمیخواد بفهمه مثل اون کسی که داناست و میبینه میدونه که الله مالکه و الله صدا میزنه مثل اون کسی که نمیدونه و جاهله و در غفلت و کافر و مشرکه و به درگاه الهی شریک قائل میشه مثل همن ام هل تساوی ظلمات و النور آیا تاریکی و روشنایی. مثل همن ام جعلو لله بری الله شریک قرار دادن. اون اولیا شریک قرار دادن خلق و خلقه آیا انها مگر آفرینشی دارن چیزی را آفرینن مثل خلق آفرینش الهی فتشابه الخلق الان گیر افتادن که این خلق آفرینشه و اینم خلق آفرینش کدوم یکی را بپرسن در شک و تردید افتادن مگر این چینینه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء و هو الواحد و القحار همه مقولید الله قحاره همه مملوکیت الله مالک الله خالق تمامی شما الله مالک تمامی شما الله خالق و شيء اون کسی که خالق آفریدگار تمامی جهان هستی اون باید فقط پرسیده بشه و با اون باید ازش باید طلب و درخواست بشه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ما اونجا بحث بحث کیه بحث اول گفتیم اونهایی که مملوکن و مالکشون الله از اونها تلابیده میشه مستقیما بعد اون اونهایی که مملوکان و ولیان غیر مستقیم از اونها خواسته میشه به با عنوان واسطه و وسیله از اونها استفاده میشه که بندگان را شفاعت بکنن از الله که كب... چون مستجاب و دعوه‌ بوده الان مسئله اینه رسول الله صلی الله علیه و در سوره انعام الله چنین بهش میگه که بگو ای محمد قل لا اقول لكم عندي خزائن الله خزائن دنیا خزینه ها به دست من نیسا روزی ها به دست من نیست، قسمت ها به دست من نیست که بیمار بشه، که شفا بیابه، که بچه دار بشه، که نشه قل لأ قلو لکم، عندی خزائن الله این، فکر نکنید این مقام نبوت و مقام پیغمبری رسول الله صدر داره زیر سؤال میبره الله جل شنون خیر داره اون مقام عبودیت و بندگیش را داره به ما یاد میکنه پیغمبری هم که فرست مالکش ما این اونم مملوکه، اون روزی اونم به دست ماست از اون هم نه به طلبی ای محمد بونها بگو که تو کار نیستی نیستی لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب کسی که خزینه ها به دست اون نیست کسی که عالم غیب نیست چی رو میخواد بگه الله بهمون ولا اقول لكم اني ملك کسی که مالکم نیست کسی که این صفات و ها رو نداشته باشه مستحق طلب و درخواست نیست جایز نیست که دست نیازت را به سوی او بلند بکنی اون کسی مستحقه که دست نیاز به سوی او بلند بکنی که مالک باشه که خزینه ها به دست او باشه که عالم غیب باشه از آیندت بدونه اون مرده که میری درش رو میزنی میگه ای فلانی من بچه میخوام تو میدونی این بچه فردا الله به داد تو رو وارد جهنم میکنه اون بچه وارد بهش قصه کهف اون بچه چرا خزر او را میکشه چون اگر بزرگ بشه پدر و مادرش رو در جهنم میندازه اون ولی که تو داری درش رو میزنی مگر از آینده با خبره که تو داری از باب اینکه اون مستجاب و دعو هست که دعاش ردخور نداره ازش میطلبی که شفیع تو باشه بین تو و الله تا الله به این پارتی بازی بچه بده چی چیز مانع تو میشه که از این که از الله بخوای مگر مالک اون بچه اون بچه دار شدن تو اون مرده است یا الله هست؟ مالک اون بچه اللهه اللهه که میدونه به مسلحتت این بچه هست یا نیست وقتی که اون بچه را الله میده زندگی ماها دست اللهه چرا باید دست نیاز به سوی اون مرده بلند بکنیم اون مرده ای که از آینده با خبر نیست غیر از این که عالم غیب نیست اون مرده تو ارحم و راحمه بودنه الله هم زیر سوال میبریم ما این کاره آیا رحم اون مرده نسبت به تو که نیازمنده بچه ای رحمش از الله بر تو بیشتره؟ اینی اگر دست نیاز به طرف الله بلامی کردی الله صدای تو را نمیشنید این سوء ظن به الله جل شانه این سوء ظن این بدبینی به الله مؤمن باید حسن ظن به الله داشته باشه چریکین از زن و گمانش میگه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه زنشون انه حق گمان بد دارن به الله مؤمن باید گمانمون به الله نیک باشه بس رسول الله صلی الله علیه و سلام الله ایش خطاب میکنه که بگو دنیا به دست من نیست علم غیب من نمیدونم من مالک شما نیستم این اتبع الا ما یوحى الی من فقط پیروی از وحی میکنم قل هل یسوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون بازم مثل آیه قبلی آیا کسی که بیناست و کسی که نابیناست کسی که نمیبینه نمیخواد ببینه مثل کسی که میبینه کسی که پیغمبرش را بنده ای مملوکی میبینه و کسی که پیغمبرش را مالک میبینه خدا میدونه مثل همان این کور این بیناست اون کسی که پیغمبر را به درجه الوهیت و ربوبیت میرسونه، او را خدا قرار میده، او را صدا میزنه، مالک میبینه، اون شخص در تاریکی به سر میبره، در ظلمات کفر و شرک به سر میبره، جای دیگر در سوره جن، الله میگه يا رسول الله، قل انما ادعو ربي، ای محمد بگو، من محتاج الله، دعای الله را میکنم، از الله میطلبم، از هیچ کسی جز الله نمیطلبم، ولا اشرك به احد، قل انما انا شما اگر راه رو راه رسول الله صلی الله علیه و لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه برئسموا در اسلام الگوینی کیست الله جل ای محمد بگو به مردم که من نیازمند پروردگارم هستم الله هم هستم قل انما ادعو ربي واسود متلبا را دعا میکنم ولا اشرکو به احد و هیچ کسی را شریک قرار نمیدم با الله در اون دعایم الله را خالصانه مورد خطاب قرار میدم فقط مستقیم از خودش میخوام قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا بگو ای محمد بونها نہ نفعی و نه سودی به دست که به شما برسونم و نہ زرری از شما دفع بکنم کلا املک الک مالک نیستم مملوکه کسی که مملوکه کسی نفع و زیان و ضرر به دستش نیست هیچ‌وقت ازش تقاضا نمیشه نباید من ازش تقاضا بشه سبحان الله خیلی ها وقتی که این آیات خصوصا مثلا این آیه سوره جن داشتی وقتی که بحث از دعوت توحیدی و بحث از اخلاص و بحث از خالصانه الله را صدا زدن این حرفا رو از ما میشنون دوچار تنفر و دوچار غم و اندوه و دوچار بغض و کینه میشن و بکینهشون افزودی میشن انگار که ما حقی از حقوق را بر مردم حرام کردیم حقی از اونها را گرفتیم سبحان الله الله جل شنهو در قرآن و اذا ذکر الله اش اشمعزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمع دوچار اشمعزاز و تنفر و نفرت میشن اگر الله به یگانگی و یکتایی صدا زده بشه این حرف های توحیدی که ما زدیم بحث این که الله را خالصانه مورد خطاب قرار بدیم فقط الله مرا در دعایمون مناجات بکنیم و با الله یکتا فقط نیایش داشته باشیم و از او فقط بتلبیم این حرفا برای بعضی ها سنگینه بر دلشون غم و اندوه میاد وقتی که این سخنان را میشنون و اذا ذکر الذين من دوني اذا هم يستبشرون اگر بحث ولی بیاد و فلان بیاد بشارت میدن خوشحال میشن اولیا ذکر بشه دلشون شاد میشه ولی اینکه اگر الله به یکتایی بشه دل خیلی ها دچار افسردگی و غم و اندوه میشه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر لي او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبني الله عليه يتوكل المتوكل بو تیرا صدا میزنه میگی که ما که اونها رو نمیپرسیم. کی گفته دعا و صدا زدن اون عبادت مگه ما گفتیم که پیغمبر که داریم صداش میزنیم در ق... سر قبرش ایستادیم مگه ما گفتیم که اینا خداین مگه ما گفتیم آفریننده‌ن مگه ما گفتیم که مالکن نه نه ما اصلا اینچونه دعای نداریم دو تا شبهه دارن یکی این که ما ادعا نداریم اینها آفریننده‌ن دوم این که این دعا و طلب ما عبادت نیست این عبادت کی گفته عبادته دو تا مسئله جوابشون هم در قرآن هست اولا کی گفته مشرکینی که بطها را صدا می زدن ادعا داشتند که اون هبل و اون ایصاف و نائله و غیر لات و عزا و کی گفته مشرکین اونها را به عنوان خالق و آفریدگار می کی گفته؟ الله جل شانو در قرآن میگوید ولا ان سالتهم اگر از اونها بپرسي از مشرکین از به جهل همسالش من خلق و والارض فريدگار آسمان و زمین کیے لا يقولون الله میگن الله فريدگار مشکل داشتن در اینکه الله فريدگار نه مشکل نداشتن مشکلشون کجا بود قل ارايتم ما تدعون من دون الله کسانی که غیر از الله صدا میزنید ان ارادني الله بالضر هل هن كاشفات ضر اگر الله بخواد به من زرری برسونه یا نفعی برسونه سودی برسونه آیا اون خدایان میتونن جلو اون زرر و زیان یا سود و منفعت را بگیرن میتونن جلو الله بیستن مانع الله بشن در اون تقدیرش کسی که اراده خلق آفرینش نداره اراده و قدرت و روزی به دست نیست و مالک نیست صفاتی که منحصر به فرد الهیه کسی بیاد مخلوق را شریک الهی قرار بده در اون دعاش انگار در خلق آفرینش و در تقدیر و در علم غیب و در دیگر امور، اون مخلوق را شریک الهی قرار داده بخاطر همین، الله میگوید، ای محمد، بگو قل حسبی الله، بگو من فقط، الله هست که کفایتم میکنه، فقط روی خودم همون چیز وجه داشتی، وجهت و وجهیه، لذی فطر السماوات والأرض، توجهم و قسم و مقصودم فقط بار الله توی حسبی الله عليه يتوكل توکل المتوکلون اون کسی که حقیقت توکل رو داره بر الله توکل و اعتماد داره پس شرط نیست در عبادت که ما اعتقاد داشته باشیم شرط نیست در عبادت در اون صدا زدن مرده در اون دعای مرده شرط نیست که ما اعتقاد داشته باشیم که او آفرینده است. مشرکین بوثار را میپرستیدند و بین خودشون و الله واسطه قرار میدادن و ادعا نداشتن که اونها خالق و آفرینندند چنانچه الله در سوره زمر میگوید الا لله الدين الخالص دین و عبادت و شریعت خالصانه باید برای الله باشه و الذين اتخذوا من دونه اولیاء اونها اینکه از خدا اولیا را قرار دادن ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفا و را صدا نمیزنن، دعا نمی کنن، نمی طلبن از اونها مگر میگه ما از اونها نمیخواهیم جز اینکه ما را به الله نزیک بکنن از باب تقرب از اون اولیا میخواهیم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب وكفار وجاي ديگه در قران میبیاد و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله انا شفعاءتگار ما نزل الله ما از اینا میتلبیم که اینا ادمای خوبی بودن از الله بخواهن برای ما کسانی را میپرسن از کسانی میخوان که زرار نفع کسی به نیست مالک نیستن بحث ملکه الحمد انت ملك السماوات والأرض وأنت رب السماوات بس كسيبه ترسيده بشي كمالكه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله باكم الزهس عزين شرك أس شنو شركي, شركي قرار دودان بواسطة قرار دودان بين ما الله صلى الله عليه محمد وعلى آله محمد